حت تو دیدار آخر شاید رسید از راه فردای روز بهتر علا شب چون بلدی بخندین و چشم دل ببوس با اش دل ببندین عشوق که دلم سبز. ایی توی دنیا از وجه موج شادی صبر دو به پس ور دو قلب سبز ایی توی دنیا از وجه موج شادی تا دو به پس ور سلام علیکم حال ولتون چه خوبین خوشین این سلامتین این برنامه یه رادیو و هفده دو سیارادیو به بهمن ماه یه از الان تا پنج و پنج دقیقه یا آینده با شماییم ایول ایول ایول ایول ای خوش خوشین سلامتین خوبین چیکارا میکنین آقا حسن خمینی پچه رو سلایتش احراز نشد بر مجلس خبرگان یعنی هر دم از این پسابرجام بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد این سید حسن بنده خدا میدونه شورای اینا جوان اینجوری میخواد به پیچونتش با اینکه خودش استاد حوزه است ولی خب برال هر نرفت دیگه امتحانات اجتهاد امتحان, امتحان اینا رو نداد دیگه چه میدونم دیگه یه زمان میگفتن انقلاب بچهای خودشو میخوره انقلاب ما نه تنها های خودشو خورد که نوه امام راهل هم خورد الان داره دندوناشو خلال میکنه بی حیا ولش کنین این حرفا رو شما خودتون خوبین امروز دیگه آخرین روزیه که میخوایم در مورد پسابر جام صحبت کنیم میخواییم بریم سراغ آرزوها و رویاهای های پسابر ببینیم بعد از این همه سال تحریم و اقتصاد مقاومتی و زندگی مقاومتی و تفریح مقاومتی و همه چیه مقاومتی حالا جوری میشه کش و قوسی به خودمون بدیم بگیم آخیش این رو درست کنی و یه زندگی غیر مقاومتی همچنی لاکچری لذت ببریم پس برو بریم. منو ها دختر خانمو آقا این برادرای سپاه ظاهرا آقا حالا حالاها نمیخوام بیخیال این قضیه توقیف دو تا قایق آمریکایی بشن هر روز یه سردار میاد از های مختلف به این فتح الفتوح سپاه پاسداران میپردازه دیشب هم یه سردار دیگه تچ بردن شبکه خبر ثابت کردن با شلی که یه دونه موشک معمولی قادر بودن ناو بر آمریکایی رو غرق کنن و برای همین آمریکا ترسید از با سپاه حالا حتما میپرسین چه جوری میشه یه ناو هواپیمابر رو با یه موشک معمولی غرق کرد اینجوری گوش بدین یاد بگیر یک ناو هواپیمابری که یک شهر 6000 نفر است میصابه یک نارنجک توان منفجرت کرد و یک ناو هواپیمابری که با هواپیماش و همه تجدیدش در 13 میلیارد دلار هزینه یک فروندش است با یک برده. موشک خواسته وقتی که نفری که موشک میزنه یا نیرویی که موشک میزاده این نیرو بر مبنای ایمان و باور به وعدی خدا داره عمل میکنه بله و چی شد؟ بچه های سپاه میتونن با یه موشک ساده ناوهای هواپیمابر آمریکایی رو غرق کنن البته به این شرط که کسی که موشک رو شلیک میکنه بچه های من به اندازه کافی ایمان داشته باشه و خدا هم خودش کمک کنه که موشک صاف بخوره به انبار مهمات ناوبر ناو هواپیمابر یعنی جدی جدی بعضی از این سردارای که جنگ هم بهش همه تحلیل ها و استراتژی‌های نظامی‌ش همجوری مفطنی برد بر شاء ماشالله ماشاءالله بابا آخه ناو هواپیمابر مگه لنج جاسمه با این موشک بزنیم بهتر کنینش فیلمای تخیلی‌رم دیگه اینجور نمی‌سازم به خدا امان از جدگیری امان اما اما چون. با با اینجا هوا سرده تو هم که همش تو برنامه رجب سرمو و سردتر شدن هوا حرف میزنی همه اکسی که با کلاه و شال لباس و لباس سر باستر <تصفيق> کتونه <تصفيق> بابا یخ زدیم به خدا رحم کن به همون من میگم بیای عکس بذار مثلا با شال بارک <تصفيق> گرم شیم گرم چی؟ جمعی از دنبال هر بهونه برای لخ کردن پسر مردم گشتندگانه رادیو پس فردا دا دا, دا دا دا دا دا دا وای وای وای وای وای وای وای وای وای اینا هم از اثرات پسا برجام ها من با شلوارک عکس می‌ذارم شما گرم می‌شین والله به خدا دوران تحریم ملتی حجاب و داشتن طبقات لغت کردنی پسر مردم نداشتن ممنونم از تماستون ولی من واقعا شرمندم من خیلی تبریک میگم بابت لغو تحریم ها ولی استریپتیزو نیستم من این این یکی رو گوش کنین به سلامتی گوش کن آقا خانم عزیز من گوش کن مهمه موبایل توی دقیق بزر زمین داریم اینجا حرف نیستم کار دار. برنامه داریم انجام میدیم برنامه داریم تولید میکنیم دیگه گوش کنین یه لحظه لطفا بله موزیک هم این خودو بیاییم پاینتر چون مساله خیلی مهم ببینید به سلامتی لایحه ی جرم سیاسی هم توی مجلس تصویب شد و دیگه جرایم سیاسی مشخص شدن. این جرایم اینطوری که توی این لایه اومده قشنگ دستبندی شدن که مهمترین و رایجترین دو تا جرم محبوب و پرترفتار توهین به مقامات و همینطور نشر اکازی به البته مقاماتی که خب شامل این جرم توهین میشن اونجا مشخص شدن و مثلا توهین به معاون وزیر و اینا جرم سیاسی به حساب نمیاد حالا کاری نداریم این لایه یه نکته کوچیکی داره که همین جرائمی که اونجا از مسادیق جرم سیاسی شمرده شده مثل همین به مقامات در صورتی جرم سیاسی محسوب میشه که به قصد اصلاح صورت گرفته باشه و نه خداینا کرده زبونم لال ضربه زدن به کل نظام تا اگه اینجوری باشه دیگه جرم سیاسی نیست جرم امنیتی تلقی میشه که خب مجازات‌های خاص خودش هم داره حالا یه سوال این وسط پیش اومده واسه ما مثلا اگه یکی نعوذ بالله چه میدونم چهار تا دلیوری بار بار فرض بفرمه جناب آیت الله عاملی لاریجانی یا مثلا چه میدونه آیت الله احمد خاتمی بکنه من میخوام ببینم کی قراره تشخیص بده که گوینده به قصد اصلاح تو کرده یا به قصد زربه زدن به کل نظام این چه میشه تشخیص داد که بعد بشه مثلا مجرمین سیاسی رو از مجرمین امنیتی مثل بمبگذارا و تروریستا و اینا مثلا تفکیکشون کرد خود قاضی هرجور تشخیص بده همونه. چیجوریه؟ اینجاست که آقا واقعاً همگی باید خدمت نمایندای محترم مجلس بگیم که خسته نباشید واقعاً که با این لایحه تکلیف جرم سیاسی رو هم توی مملکت مشخص کردیم. واقعاً زحمت کشیدی. متشکرم. برشی جان سلام،, سلام حالا که کلکل آب و هواهه بهتره بگم که الان من تو دالاس تگزاس هستم بلده. هوا 63 درجه فارنهایته حالا برو خودت کلکلیت کن ببین که چند درجه سانتیگراد میشه هواه آلیه با یه تیشرت هم میشه رفت بیرون قربان تو ام آر بله، البته خب کلم اونوری بوده یعنی که کجا سردتره؟ نه گرمتره؟ تره ولی بذار من الان میگم بچه حساب میکنم آقا بزنین تو کلکیولیترتون. ا 63 درجه فارنهایت بگین چند درجه است من نمی‌فهمم آقا این ماشین حساب چه اشکالی داره که میگن کلکیولیتر چند بگین ملت مثلا 17. 17 نمیشه 17. 17 درجه دیگه نبود بالاتر جا 18. بچه ها میگن هلووش 17 18 آقا همه 17 18 درجه یه جوری که با تیشرت میره بیرون مثلا انگار ما گفتیم حتما بالای سی درجه است هر حال دوست عزیز 17 درجه و 18 درجه و اینا زیر حد نصاب برای کل کل کردنه و کلتون پذیرفته نمیشه حال مرسی از تماستون فرشید منافی جان اینقدر از زمستون نگو ما توی آکلند زیر آفتاب هر روز برانزه میکنیم شب براتون میسوزه توی اون سر ما آخ آخ آخ آخ. <تصفيق> نداره برونزه کن ولی اگه آکلند نیوزیلند هستی خدمت ارس کنم که بالا سر لایه اوزون سراخه داداش بله مراقب باش خلاصی زیادی برونزه نکنی کار دست خودت بدی <تصفيق> حالا که بحث آبا هوا شد جا داره همجه تبریک هم بگیم به تهرانی های عزیز بابت اینکه شاخص هوای تهران امروز در محدوده هوای پاک قرار گرفت یعنی تهران نگود آمنه های آلپ. باز بگیم پسا برجام بده. اینا همه از این تاثیرات پسا دیگه نفس بکشین. نفس بکشین جای ما رو هم خالی کنین. راست دیروز گفتم بارش برف تو خیلی از مناطق کشور شروع شده. ای روزهای آیندهم ادامه پیدا میکنه این بارندگی ها با دیروز گفتم بخصوص تو استان گیلان شوخی بردار نیستا. خواهش میکنیم گفتن 60 تا 80 سانت برف میاد. خواهش میکنیم تو این دو روزی که ما نیستیم مراقب خودتون باشین. بله. برف، برف، برف میباره قلب منم شبی قراره برف، برف، برف, برف میباره خاطره ها تو یادم میاره تو دوباره سلام و دلاره این کنارم مطمئنم سه کار پسابرجمان بفرمایید سلام خانم ببخشید مواره کار زنگ زدید تحصیلاتتون چیه؟ پنجومه ابتدایی نه آقا متاسفانه تحصیلاتتون کافی نیست. آخا اخه ما مهندس که نمیخوایم بشیم که نوشته بودید آبدارچی میخوان دیگه. آقا عزیز ما ده نفر با مدرک لیسانس تو لیست انتظار پسا شغلی آبدارچیه کون داریم. نمیشه که اینجوری. قربون در صد اسمم مارم بنویس بشه 11 تا. متاسفانه نمیتونم آقا. خیر از ضروری ببینی خواهر راه دوری نمیره که. متاسفم خداحافظ. خواهر من هفت سالو داره ما. ای بابا ملت چه کنن مرکتشونم نمیره اصلا از ببینم فیفی چی میگه تو چه ای بابا اگه کوزاش این تلفن ما به زندگیمون برسی الو محسسه کار پسا برجامان بفرمایی بابدین ما برای استخدام زنگ زدین آبدارچی هستیم با مدرک لیتان واقعا صداتون چه آشناست قبلا تماس گرفتین شما نوالا خوار من اصلا نهل تماس که ما هر وقت کار دارین زنگ میزنین خب اسم شریفتون من گنجلی هستم گنجلی فامیلتون گنجلی زاده ببخشید همین الان زنگ نزده بودیم به همین شماره خب چطور فهمیدی واقعاً که چرا وقت ما رو میگیرین آقای عزیز من وقتش ما رو نمیگیرم که گفتیم این برجام اینا امضا شده دیگه شما این زحمت ایده کار چیزی واس ما جور کن دیگه آقای گنجلی من گفتم که جا نداریم برای شما خب یه ذره بگو جمع جور تر منم جاشم دیگه من هفت حال به هم زد خجالتم هم خب کشن میگه نه علیه شستانو خیش بیشنات داده خاک به سرم اینم که پری یه جوابشو بدم به ترکی با این زنگ موسسه کار پسا برجمان بفرمایی بخشی دخترم من برای کار زنگ زدم هر کاری کسی می کنم بله خانم برای چه کاری زنگ زدی شما خمون آفدارچی شستشون نگرداری بچه مدرکتون چیه من دفتر من رو تازه عوض کردم نو نو نه خیلی. مدرک تحصیلیتون رو کردم آها آه خیلی مدرک شما بگید من شوهرم آشنا داره جور می کنه آسیه آمد قلبی داکت چه بچی بود بودون بره ببخشی شما قبلا زنی نزده بودین من؟ نه به خدا من زنی نمیزنم به جایی که آقای عزیز شما دوباره صداتون رو عوض کردین من،, من،, من سرما خوردم همین دو دقیقه تا حالا انقدر صداتون در اثر سر سرما خوردگی عوض داره نه دی... یعنی آره... واقعا خیلی جالت آوره باقی من مادر یعنی پدر هفت سر حاله هم گفتم این برجه و شده؟ یه کاری بگیم من گفتم کاری برای شما نداریم من بیره میتونم بردارم دیوانه شدن آمردم بسه ببینم دفتاره بیشور با علیه چی کار کرده وای چقدر به این پسره لگه نخ و اح حالا به هم خورده الو مؤسسه علیه 69 اح چی نگم چیز مؤسسه کار پس و برجمان بفرمایید بگو هلو هلو, هلو بگو ویلو ویلو حالا اگه یه فایب زاری آخرش میشه هانووله جلو ما بدید غیرو و فروحه. بریم سراغ پسورد امروز پاسابرجام و آرزوهای بزرگ همه رویاهای تمام نشدنی هشتاد میلیون ادم امیدوار بیانیه شماره 973 بدانید و آگاه باشید که داشتن هواپیمای سالم و صد سال کار نکرده و کیف سی و مکدونالد و باقی مواهب ارتباط داشتن با دنیا چیزهایی است که همه مردم در دنیا به صورت مادرزاد از آنها بهرمندن پس ضمن احترام به همه آرزوهای دستیافتنی یافتنی شده ی ناشی از دوران پسابرجام بد نیست همه ما کمی هم فکر کنیم که اگر رهبران مملکت دوازده سال پیش فیل اتمیشان یاد اندوستان نکرده بود الان ما در چه حالی بودی مندگان از این که مسافرین هواپیمایی‌های ایرانی دیگر با اشهد و حلالیت طلبیدن سوار هواپیما نمیشن به شدت استقبال کننده های رادیو پس بعد دا آ علیا اعتراض راه. وقتی برجام‌ها تا حدی از حوالی 3 شده هرش ما تقریبا تا 5 سموکدیت میکنیم. بله خسته نباشین. پسابرجام مختلید کنیتون من تبریک عرض میکنم. به حال کمک کردیم پسابرجام به شما که تعداد بیشتری مخت بزنین. واقعا اینم یکی از تأثیرات پسابرجام دیگه بر بعضی ها خسته نباشین ایمیل دادن که میشه برجامو برای من معنی کنید، باور کنید نمیدانم مخالفت چیه. محمد ایمیل داد. آقا یکی برجامو معنی کنه. برجام از. جلال برجام چیه؟ برنامه جامع جامعه اقدام مشترک. همین دیگه برنامه جامع. تهیه بر جام جامع اقدام, اقدام, اقدام مشترک دیگه برجام بر. برنامه جامع اقدام مشترک. همون توافق هستی. یعنی توافق اتمی. خب بر ها الی سعید چه خبرها کامنت وامنت چی داریم؟ بله، کامنتا رو چند تا شما بکنید ها حامد اگر اشتباه نکنم جنتریس گفته فرشی جون از وقتی برجام اجرا شده تنو تاثیرش تو خونه ما این بوده که بابا میذاره ما رو ببینیم و دیگه هم اخبار نمیبینه والا به خدا حالا حامد جان شما با همین دید مثبت جلو برو همچنین یهو دیدی تابستون شده بابا حتی کولر هم خاموش نکرده دیگه چی؟ خودش دیگه... خودشون قش کردهن از خنده. <تصفح> کامنت گذاشته بودم. آقای چی یه بار دیگه بگو. پس پسا برجام صرفا واسه نظام جمهوری و بقای اون خوب شد. به من شما چیز خاصی نخواهد رسید حتی همون مکدونالد زپتی. <تصفح> این مکدونالد موذلی شده. ان شاء الله چه سریع‌تر باز بشه و با. بالاخره مللتی از نگرانی در بیاد. <تصفح> اسمش چی بود؟ نوید یراقی خب بعدی جواد الهی نوشته که این پسابرجام رو زندگی من و همکارم تأثیری نذاشته امروز هم مثل قبل از برجام ساعت هفت رفتم سر کار بله آقا جواد به نظر شما همچین یه روز ساعت سه تا هفت و رو سر کار اگه کسی هم بهت داد بگویی ساعت کار جدید پسابرجام خب آنه مریم صادقی آراحت کننده نوشتن که نصف خاطرات خانواده ما با این شروع میشه که تو هنوز به دنیا نیومده بودی لذا شک ندارم تغییرات و تحولات مهم پسا برجمی قشن این زمانی صورت میگیره که من حتما از این نویا برم خانوم خانوم خدا نکنه خدا نکنه ولی اگر هم این اتفاق افتاد دیگه افتاده دیگه قسمته کاریش هم نمیشه کرد <تصفيق> خب دی همین فهمت شو کامنت ها از کجا بود هم از فیسبوک بود یا از اینستاگرام بود فیسبوک بیشتره بسارش فیسبوک آره. بود مرسی اس ام اس آ اس ام اس اومده آره. اس ام داریم آها راست میگه گفته اس ام اس درمون اون اس ام که اعلام کردیم نیست اس اه... ام اس های دیگه‌ای اس هایی که رادیو فردا اعلام کرد از طریق اون با ما در تماس بودن سلام اگه میخواهید مشکل مک دونالد حل بشه اسمش میشه مک دونالد یا هاج دونالد نه هاج دونالد اینم یه اسمسی بود که رسیده بود بابت موضوع امروز امیر خیلی شلوغ یه سریم امضا کردن توی اپلیکیشن برنامه ما رو امیر خیلی شلوغ از تهران چی؟ سر سربزرگیه زیر لاحاف مریم 1313 ارتش تهران نیلا خوشگل باباش فرشته تهران مجید بلادی فرمانیه مهدی گابزن بابو <تصفح> نوید غزوین و بردی آوادان منوچ ام اصفهان دسا پارک سیتی چی امیر از لامپور دسا پارک سیتی بابای پگاه خانم از لامرد ارسلان پسر ارغوان نوید ده ساله است تهران فرهاد یواش صحبت کن بابا همه آب دهنت پاشی تو صورتم توی میکروفونت یعنی از توی میکروفون هستن الا فرهاد جان رضا از ونکوور رضا شب بخیر از کلن آلمان مهدی از تهران امیر و از از دودوخانه نمیدونم کجاست مجید عاشق رادیون رادیونتون پاسورداش تهران تجریش اما اگر خواستید با ما در تماس باشید پاسوردات رادیو ایمیل ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساوند اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برمون کامنت بذارید های ما هم دو سف چار بیست یازده بیست و چهار سه اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن دو سف چار سد و بیست و و شش بیست زمان توی دنیا به سه حالت تقسیم میشه زمان گذشته و حال آینده خوب. برشید اما ما چون ایرانی ها خیلی میخوایم استثنایی و تک باشیم تو همه چی مم. زمان تو کشور ما به هش حالت تقسیم میشه او او. حالا چی همه هش حالت هم؟ گذشته و حال آینده خوب. زمان شاه زمان قبل تحریم خوب. زمان بعد تحریم زمان قبل فرجام زمان بعد فرجام فرجام چی با؟ برجامه دیگه <تصفيق> البته قبل تحریم و قبل برجام که یکیه اون که هیچی بعد تحریم و بعد برجام هم که خب یکیه بعد یعنی کلا میشه گفت زمان آره دیگه تو ایران میشه زمان شاه زمان بعد از انقلاب زمان قبل برجام بعد از برجام اینجوری راحت تره دیگه حالا اون بقیه رو فاکتور میگیریم این البته این دومی رو بعضی میگن زیاد فرقی با قبل برجام یعنی نداره این بعد از برجام با زمان قبل برجام بعد از برجام میگن خیلی فرقی نمیکنه ما دیگه نمیدونیم دیگه زمان همه چیز رو نشون خواهد داد اما یه زمانی بود هیچی نبود تو مملکت یه اون هم می کردیم مثلا می گفتن آقا جان جنگ خجالت بکشین باید کمربند ها رو محکم ببندیم نه حال انقلاب رو با خونمون آبیاری کنیم و جنگ جنگ تا پیروزی و این صحبت ها. جنگ جنگ تموم شد دیدیم بازم هیچی نداریم مثلاه که می زدیم می گفتفتن الان در دوران سازندگی هستیم باید کمربنددار رو محکمتر از زمان جنگ ببندیم و نهال انقلاب نیاز به مرمت و بازسازی داره ببینم که هیچ بعد بعد از سازندگی اینا میشه گفته اینم زمانهای چیز هست یعنی قبل جنگ بعد جنگ نمیدونم چه میدونم قبل سازندگی بعد سازندگی قبل اصلاحات بعد اصلاحات هم هست بعد بعد سازندگی اصلاحات شد گفتن یواش چیزی نگید اصلاح طلبه اومدن اصلاح کنن همه چیز درست میشه که آخر خب اونها هم خودشون, خودشون کلا اصلاح شدن رفتن پیکارشون بعد بعدم که اومدیم صاف وارد دوران تحریم شدیم و بازم دیدیم هیچی نداریم این بار کسی گلایه کرد؟ جواب میشنید که مملکت توی تحریم قدرت‌های جهانی می‌خوان نهال انقلاب رو ریشه‌کن کنن و جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و این حرفا خلاص رهبر هر سال با ترکیب جهاد و کوشش و مقاومت و بدبختی و چون این چیزا یه جمله میساخت سال‌ها رو برای خودش نامگذاری می‌کرد یعنی توی این سال‌ها یه آب خوش آقا آقاگلو که پایین نرفته هر چی داشتیم و نزدیم ریختیم پایین نهال انقلاب اینام که بدبخ هنوز همینجوری نهال مونده خب بابا این میوه نمیده اینو بکنی نشه دیگه جاش بکارین. نه حال درخت ارعرم بود الان توی حمزالی میوه یه چیز, شکوفه یه چیز می می شو یه ای چیز میداد دیگه یا لاقل میشد نشاست زیری سایه دو دقیقه استراحت کرد والا <تصفيق> والله اینا رو گفتم همه اینا رو که اهمیت دوران پسابرجام رو براتون بگم ببینین الان که وارد دوران پسابرجام شدیم و تحریم های ملی برداشته شده و جنگم نیست و اینا دیگه گوشه شیطان کرد واقعا انتظار داریم هر چی توی این همه سال نداشتمو دیگه یه جا داشته باشیم اینه که یه مقدار انتظارات از دوران پس و برجان بالاست و اگه تو این دوران بازم نتونیم به این یا و حسرت حسرت‌ها و نداری‌ها و همه اینا قلبه کنیم بازم معظمله یه چیزی رو بهونه و به کمر رو شل نکنین و نهاله انقلاب خسته است تو این عرفا. دیگه واقعا باید یه فکر اساسی واسه این نهاله بکنیم آقا بکاریم بجاش به خدا بسرفه فریبرز سلام چه خبره سلام فرشید جان اول برنامه مژده بدم به حالی فوتبال که ممنون تفسیریه ممنون تفسیری آقای علی کفاشیان از توی ما بعد از دو هفته به پایان رسید آخ رج شروع آره, آره. در تالار پرسپولیس داریم حیدام به سلامت اثرات پرساور جان باشه به قول معروف آره به قول این ها کامنتای که الان خوندید تو اولین مصاحبهش فرشید آقای کفاشیان امروز با توپ پر همه گزارش های اصل نورد مجلس در مورد فساد در فوتبال و که دیم حرفشو زدیم رد کرده گوش بدیم به صحبت های خود ایشون بفرمایید گوش کنید بالاخره الحمدلله بعد از دو سال ما دیدیم گزارش کمیسیون محترم اصل 90 ارائه شد که من چیز جدیدی در اون ندیدم. به نظر من این به صحبت های افرادی که بدون ارائه مدرکی و بر اساس ذهنیت خودشون و این دشمن های خودشون به کسی تهمت میزنند، به هیچ شما به اینها نمیشه استناد کرد زمینه که بعضی از این مواردم در 8 سال گذشته خب ممکن اتفاق افتاده باشه افرادی تحت موقعه قرار گرفته باشن افرادی سوء استفاده کرده باشن با میونه ها در صورت افشا باشون برخورد شده بله پس فساد و رشوه و روابط نامشروع و نمیدونم کلی اون چیزایی که دیروز تو مجلس گفتن تو هم اشاره کرده بودی در مورد فوتبال چی شد فالا با این حرفای استاد کفباشیان اونا یعنی چشک احتمال افشا چی آره دیگه یه خبر، یه خبر جالب دیگه داشتیم امروز با این عنوان اعتراض دبیر انجمن صرفی انجامن سنفی کارخانه های قند و شکر محمد مایلی کوهن نکنه فامیلی کیروش در اومده طرف مایلی در روز پیش یه جایی گفته بود افرادی مثل من فوتبالی باید در کارخانه قند و شکر کار کنن اما افرادی که تخصص ندارن در ورزش مشغولن عجب. آقای دانیالی دبیر انجامن سنفی قند و شکر امروز با ناراحتی در واکنش به این حرفا خطاب به آقای مایلی که گفته تو با این طرز فکر علی اسقری سواد فوتبال مدرن رو نداری و کلی چیزایی دیگه گفت دیگه تند کسی که میتونست پای غند و شکر به فوتبال ایران بازی کنه فکره هم حاجی مایلی که بود آره والا دیگه چه خبر؟ خب پرمنده ورزش هم فرشید جان با خبر چاقوچشی دلیگه برتر بسکتبال اجازه ده برند از آره از آبادان خبر اومده که تو بازی نفت این شهر یعنی نفت آبادان و پتروشیمی بندر امام تو لیگ برتر بسکتبال بهنام یخچالی بازیکن ملی پوش پتروشیمی به ضرب چاقوی یه تماشاگر زخمی شده بازوش 8 تا بخیه خورده کلی و کلی عکسام تو سایت های مختلف هستن خدا به نظرم من باید به بازیکنام از این به بعد یه غمه غمی چیزی بدن دیگه بتونن خودشون دفاع کنن تو اینجور هیجانش هم بنظر بیشتر میشه تو بازی آره <تصفح> ممنونم از فری برز غریب باید خدافزی می‌کنیم تا هفته آینده شنبه تا شنبه آینده خدا نگه همگی هم که هموطنانه عزیز مجده مجده روزه هجران و شب فرغت یا راخر شد زدم این فال و گذشت دختر و کار آخر شد آن همه ناز و تنعام که تحریم ها می‌فرمود آقابت در قدم باد برجام آخر شد مؤسسه مسافرتی برجام 3 تقدین می کنن. زم نعرض تبریک به مناسبت لغو کلیه تحریم های بین المللی و وارد شدن به دوران پسا برجام مفتخرین به اطلاع ملت شریف ایران برسانیم که اکنون انتظارها به پایان رسیده است و شما می یک زندگی پسا برجامی مدرن و به دور از تحریم و محدودیت را تجربه کنید اگر همواره حسرت خرید محصولات اپل از نمایندگی های رسمی آن را داشته اید اگر دلتان برای خوردن یک همبرگر مکدونالد واقعی و حضور در شعبات اصلی و غیرتقلبی لک زده است؟ اگر میخواهید یک زندگی آزاد و پر از آسایش، تجمل و رفاه را تجربه کنید، بدانید که انتظارها به پایان رسیده است. مؤسسی مسافرتی برجام سیر به مناسبت فرارسیدن ایام پسا برجام، تورهای پاریس، روم، آمستردام و لندن خود را با ده درصد تخفیف ویژه عرضه می نماید تجربه بی از یک زندگی پسا برجامی فقط و فقط با تور دور اروپای برجام سیر لازم به ذکر است، پروازها همگی با بوینگ 3 کلومتر هواپیمایی امارات می باشد با برجام سیر زندگی پسا برجامی را تجربه کنید مؤسسه مسافرتی برجام سر. با سلام 21.30 شنبه شب را زمن تحیل از انتشار خبرهای زد و نقیز از احتمال پناهنده شدن بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به روسیه در آینده، با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز امشب آغاز می پیدا شدن مقدار زیادی پول در حساب نخست وزیر مالزی به عنوان هدیه آل سعود به وی و نظر کارشناسان که یعنی اگه مسلین ایران هم مثل این دست دلواز بودن الان همه کشت مورده ایران بودن استقبال عجیب دولت و تجار ایتالیایی از عقد قراردادها مختلف اقتصادی با ایران و خوشحالی ناظران از این که در پسابرجام این کشورهای اروپایی هم از رکود اقتصادی درمدن و در خواسته دعای حسن روحانی از پاپ فرانسیس منظر فعالان و دعا که الان معظمله شاکی میشه میگه چرا به جای که از من التماس دعا داشته باشی از معزمله اونا درخواست دعا کردی؟ <تصفيق> سر مهمترین خبرها امروز و امشب را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل بل. <تصفيق> با سلام آیت الله مکارم شیرازی ضمن ابروزن یرینی از کمبود روحانی در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد باید راهکارهای اندیشیده شود تا طلاب و روحانیون از به موتن خود بازگردند در همین رابطه یکی از کارشناسان امور طلاب و روحانیون کشور به خبرنگار ما گفت کار روحانیون کار بسیار سختی است و مسئولین باید برای بالا بردن سطح رفاهی زندگی آنها در شهرهای مختلف، بیشتری بکنند وی ساخت شهروازی ویژه خانواده طلاب رایگان اعلام کردن اقلام مصرفی اصلی و حیاتی برای آنها و همچنین اجرایی کردن طرح نظام هماهنگ افزایش حق منبر روحانیون در شهرهای مختلف را از اومله دانست که میتواند آنها را به رفتن به شهرهای دیگر مشتاق نماید وی در انتها روح این قش را حساس ترین قسمت آنها دانسته خواستار توجه بیشتر مسئولین به روح تولاب شد. پایان محشروع اخبار بله، همکنون از طریق خطوط تلفنی در خدمت برادر مشکل گچ ها کافشناب مشکل گشه های برنامه هستیم تا مشکلات ما را گوشایی کنن بله. ای خب حالا در مشکل گوشایی بفرمید بله من نه سلام بله. عرض میکنم و در خدمت شما هستم آه چه عجب خب بله. مشکل جام بفرمایید که الان در دوران پسابر شما به عنوان ای بربچه های وزارت تلاعات اینا چه تغییراتی رو در جامعه احساس کردید بله حقیقتا چیزی هم. که الان خیلی خیلی قابل مشاهده ای اینه که میزان بیکاری در کشور در این دوره به شدت بالا رفته بالا رفته و... یا پایین اومده مشتر نه بالا رفته دیگه ای آخه چطوری به این صورت این اتفاق افته ببینیدی که از اتفاقات م... که متاسفانه در اثر برداشتن تحریم هاش رفت گرفته اینه که برادران زیادی بیکار شدن در اثر این اتفاق ای یعنی چی؟ و... چجوری آخه مشتر ازیزانی بودن که در دوران تحریم رحمت واردات جنس آه. رو بر آهده داشتن که خب با این اتفاق تلخ دیگه کارشون رو از دست دادن اینها دیگه ها یه رفتم الان فهمیدم که یه رو میگی همین برادران قاچاخچی رو میگی که من... چین و این نوعی منور جنس بنجل وارد من... میکردن باشی البته این تعبیر مم. که البته خب درست نیست یعنی این ها زحمت کشان این کشور بودن حجب با خب خسته نباشم بله. با خود رئیس جمهور قبلی بهشون ب... میگو برادران کچخچی با بادر شما با اینا چیکار داری مشکی؟ دارین بله ببینید ما در برابر مم. مشکلات مالی و کاری همه اخشار جامعه وزیفه داریم دیگه. الان هم خیلی از این عزیزان حتی کاشانه و زندگیشون در حال از هم پاشیده داریم بابا که دیگه خودشونو بسن بله دیگه بابا حالا شما بله چیکار می‌خواید بکنید بلاشون دیگه ما برای این که مشکلات این عزیزان برطرف بشه آنها رو در قرارگاهه قشبولوسیا وری کردیم و در حال انجام های عمرانی زیر نظر وزارت هستند دیگه این عزیزان قشبولوسیا بله بله چیکار میکنن اونجا بعد دقیقا مشکل الان یک سری چاله کند شده در این قرارگاه خوب. یک دستازن عزیزان این چاله ها رو میکنن باستی ما پر میکنن میگه به به به به چقدرم کاری مفیدی میکنن ماشالله بله. خوب ازای بالله. مالی چطوره اونجاها ب... دیگه های پیمانکاری های صفاه میگه مبلغ این کار کدامشون چند میلیارد تماش میگیرن میگه آخی یاخی دلم ریش شده است مشکل پاستالهی ساماندهی کاسبان سابق تحریم گذاشتین من دیگه آره. بنده... الو الو صدای بندش شما رو ندام الو ای اون به حالت ایچی و به و کاسب ما درست ولی باب تشکر از توجه شما تا تو اون دیگر و برنامه دیگر و مشکلی دیگر خدا میگم جون سلام دوییش کجایی تو دو بابا پس شو... برجام شده اینجا و از اوزا خوب شده همه چی آروم شده آخه شما خام بیایید حماتون بیایید حماتون برگردین بیاین همه بگو بیام اینجا فاداتشم آرش هستم دایتا ها به به آرش جون مرسی حتما خدمت میرسیم دیگه این بعد 2 چند قسمت باقی موندرم بریم دیگه بعد میایم دیگه کلا پس برجامو دوره هم باشیم تو کوچولو هم ببوس از طرف ما بپرس ببین چی دوست داره برات بیارم از اینجا عمو فرشیدش آخه کلن این رویاهای های پسابرجامی ما بعضیش انقدر معصومانه معصومان و دم دستیه که برابرد کردنش واقعا برای معظم کاری نداری که آقا ما چه گناهی کردیم که جایی که KFC باید همهش بسیدن QFC و PFC و CFC و این چیزا بخوریم یه چرا باید بشینیم تو مشدونال دونه و حاجدونال دونالد و مکدولند دونالد و اینجور جه چشامونو ببندیم و مثلا تصور کنیم تو مکدونال نشازیم هم گاز بزنیم. آقا تا کی بعد پولمونو بریزیم تو جیب ی اده که تا اسمی با برندای معروف جهانی دارن نم میخورن؟ خب این بازار پر رونق ت... تشابه اسمی این یعنی چی <تصفيق> یعنی ایرانی جماعت حسرت این چیزا رو داره و یه تشابه اسمی هم انقدر براش جذاب است که ترجیح میده بره اونجا به یاد مکدونالد مک‌دولند بخوره مثلا اینه که ما همینجا از معظمله خواهش میکنیم دستور بدن در دوران پسابرجام یه چهار تا فسفود و کمپانی معتبر جهانی بیان تو ایران شبه بزنن خوبیت نداره بابا مردم و ملغورهای جهان اینجوری تسرت بدل چیزایی باشن که مثلا توی برگی نفاسو هم هست خیلی عادی محسوب میشه این چیزا دیگه من تشکر میکنم فرشید جان حالا که این تحریمان رو برداشتن که پی آمده پس آورژ من بزار برداشتن تحریم پخش کردن صدای آدمما این بهمثل من این که اینقدر ویس میذارن امیرم یک تحریم شکن از تهران بابا امیر جان تحریم چیه به خدا صدا های شما رو همش رو میریزیم توی کیسه ای چشام رو می دست میکنیم هرچی در اومد تخش می کنیم دیگهتحریم چیه؟ حرفو چیه؟ ایه. اما خانم آقای اون یه بررسی انجام شده تو تهران و نتیجهش این بوده که میانگین سن ازدواج به سی و تا چهل سال رسیده جان چی شده؟ سامی چیز داره میگه چی میگی؟ بگو تو گوشم میشتم ای جدی؟ چه جالب؟ خب دوستان میگن که بله حاج آقا این در اصلا این خبر رو میسید که در جریانش بوده و برای این قسمت یه آگهی هم ترتیب داده که آماده است دیگه الان میتونیم به اتفاق بشندیم بریم بریم بفهم آیا جوان عذاب شما از ازدواج فراریست؟ آیا تا به حال چندین بار این ملعون از پای سفره عقد و مراسم پرشور بله بران فراری شده است؟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 اج سررا یه دفتر دارمم شما ننداره صورتی داره موردده بله. پس خوشگلی ما دم بدی اونونش نمیدم به همهشونش نمیدم به گش نمیدم به هم یاش نمیدم به کسی میدم تک باششه بله. من و تشه و حالا حاجی دیگه و حاجیه دیگه آه یعنی چی به پدر عروس و دو دوماد آخه سیغه مجانی میده من نمیدونم نشد این حاجیه کاری بکنه ما کجلتشون نکشیم من شرمندم من معذرت میخوام دیگه حاجیه دیگه کاریش نمیشه کرد چه خوشحال شدن این آنگ عروسی میرن از همه بیشتر بچه های ما موسیقی خوشحالن بله خستا باشید. <تص> اما یکی دو روز پیش خانم معتمداری بازیگر بزرگ سینمای کشورمون برای نمایش یه فیلم رفته بودن کاشان نمایش فیلم یه سکوت نکرد تا حتی حضور ایشون توی این شهر انگار کلن ممنوع بوده کسی خبر نداشته انگار مثلا تو ورودی این شهر تابلوی ورود, ورود مطمداری ها ممنوع زده باشن اینجوری منطقه مسئله اینه که کار انگار بالا گرفته امام جمعه کاشان وارد قضیه شده که عضو مجلس خبرگان هم هستن ایشون اومده یه بعد بیرا گفته که حالا الان براتون یه سری از حرفاشون رو میخونم منطم از بچه ها هم خواهش میکنم توی تفسیر سخنان ایشون خود کمک بدن که به حال بتونیم با هم به کنه ته ذات سخنان ایشون نفوذ کنیم چون خیلی حرفای عجیب غریبی زدن ایشون در فرازی از سخنانشون مثلا گفتن چگونه یک نفر که سمتی هم ندارد در گوشه نهادی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران درخواست اعزام هنرپیشه ای که دارای وضعیت مناسبی نیست به کاشان بدهد آقا من نمیم چی میگه ایشون کاشان چیه ماجرار قضیه چیه کاشان چرا اینجوریه والا فکر کنم جدیدن ورود هر گونه هنرپیشه ممنوع شده به ایالت کاشانیه اصلا آره فکر کنم برای خانوم های هنرپیشه بخوام وارد بشم باید ویزا بگیرن درخواستشون هم باید به دفتر مام جمعه در حالا ممکنه حالا در ادامه حرفاشون گفتن آنچنان وضعیت ظاهری وی بد بوده که گویا هنگام ورود وی به خیابان تمهیداتی فراهم می‌کنند تا کسی وی را با آن وضعیت نبینند. مال من نفهمیدم چه تمهیداتی بچه ها من نمیگیرم الان شما می‌دونید چه تمهیداتی؟ والا احتمالاً گونی کردن تنش پوشیدگیش یه خورده بیشتر باشه. <تصفيق> <تصفيق> شایدم خواهر چرخنده رفته یه دونه چادر سفارشی هدیه کرده به خانم محتمداری. <تصفيق> چردم، الله نمیدم یه اسید فاش بودم، پس خانم متحمل گفتن میکشی یا گفتند میچجی جلوی به پاشه؟ <تصفح> الله این قسمت از حرفایشون دیگه باقان منو تا حد سرگیجه، ری تا حدی سرگیجه تاثیر گرفت. یشون گفتن که متاسفانه برخی مسئولان، نقادهای مسئول. این توجیه را داشتند که چون ایشان مجوز دارد کسی مزاحم اون نشود. آقا یعنی چی اینو من نمیگیره نمیگیرم. چون مجوز داره باید مزاحمشون بشن یعنی؟ چه جوریه؟ شاید منظورش این بوده که اصلا مزاحمت برای خانم کار درسته نه؟ مزاحمت بیشتر <تصفح> امتیاز بیشتر. آيو نه فکر کنم به نظر من نشون. نظرش اینه که مزاحمت مجوز نمیخواد. دیگه مزاحمین راحت, راحت باشند باشن. هر کاری میخوام بکنم مزاحمتشون ادامه بدن. نمیدونم من میگم نکنه گرفتن مجوز اصلا برای همه چیز لازمه حتی مزاحمت یعنی اینم میتونه باشه آقا نمیدونم دیگه خلاصه داستان اینجوری بوده من ممنونم از که کمک کردن به حال بفهمیم حرفای ایشونو با توجه به اینکه ایشون عضو مجلس خبرگان هم هستن آدم تازه میفهمه که اعضای این مجلس باید چجوری باشن تا صلاحیتشون مورد تایید قرار بگیره بریم سراغ کامران ملک موتی پس دلنگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران ملک موتی سلام سلام فرسی جان سلام همگی بزن بریم که پرونده خبره هنری این هفترم ببندیم بذنج امروز محمد حیدری دبیر 34 ام جشواره فیلم فاجعه نشست مطبوعاتی تقریبا طولانی داشت که سه تا نقطش اش برام خیلی جالب بود یکی اینکه حیدری گفته امسال فقط فیلما که توش سیگار کشیده میشه شامل ممیزی شدن شما هم باور کنین بعدش اینکه راجب حضور گشت ارشاد در زمان برگزاری جشواره صحبت کرده گفته ما سعی میکنیم همه چی رو را رعایت کنیم ولی از دوستانم میخوام که رعایت کنن با مناسب به کاک جشواره ها بیان پس با این حساب امسال فقط خانم الهام چرخنده میتونه بره فیلم ببینه دیگه. کسی دیگر نمیتونه بره با این وضعیت. احتمالا. نکته بعدی چیه؟ هی داری همچنین گفته که قرار ایم برگزاری از آلبومی رو نمایی بشه به اسم 100 سال موسیقی سینمایی بعد از انقلاب من هر جوری اصلاح 100 سال از سینمای انقلاب نه من که سه کلاس یکی رو حساب بکنن <تصفيق> شادم موسیقی متن اصلا فیلمایی که قراره تو 65 سال آیندهم ساخته بشه قرار منتشر کن، منتشر کنن دیگه <تصفيق> نمی‌دونم. آره دیگه احتمالاً یه دو تا خبر هنری هم دارم در رابطه با سفر آقای روحانی اومده بود، بامزه بود که اینکه موزه روم به درخواست نخست وزیر ایتالیا یعنی آقای رنزی مجسمهای لخت رو با کارتون پوش که یه وقت مهمونا موقع بازدید ناراحت نشن. آره, آره بعدیش هم یک روز پنجشنبه رضا کیانیان به عنوان نماینده هنرمندای تئاتر و سینمای و تلویزیون ایران به فرانسه میره همراه میشه با روحانی ما فکر کنم بلزکنی سریال کیمیا رو میبینه خاسته کیانیان رو از نزدیک ببینه <تصفيق> احتمالاً موسیقی چه خبر کامران امروز آلبوم آخرین تانگو توی سراسر کشور منتشر شده موسیقی کل آلبوم و کارن همایون فر نوشته اشوارش هم از یقما گلوریه خانندش هم باقریانه باغریانه بسیار خب ممنونم ازت بخشی از یکی از کارهای این آلبوم رو میشنویم باید خدافزی میکنیم تا شنبه تا شنبه خدا نگه دارم خابزا رو خط جاده نگو میرسه به بومبست هنوزم فرصت تازه باسه دیوونه شدن هست حرف این و اونو ون کن من و تو خیلی زیادیم شایدم دوباره عشق یاد این آدم ها دادیم بیا هم دست دلم باش توی عشق بی مجوز ردشو از فضای بسته ردو از خطای قرمز زندگی تو مشت ماست اگه بخوان تنها یک بار ما به دنیا میان زندگی تو مشت ماست اگه بخوان تنها یک بار. سلام فرشی جن خوبی برین این مکدونالد و کی اف سی اون چیزا مهمی نیست هم ما همون اون فلافل خودمون رو می‌خوریم ولی این پولامون آزاد شه نفتو رو بفروشیم هواپیما بخریم به قره هم آه. اصلا دلم میخواد فقط بشینم تو هواپیمای نو no. اثراتم اشد اینقدر تلق تلق میکنه که دیوونه میشی به قره دیگه راحت بشیم ایشالله شاء حالا باز فقط تلخت تلخ بکنه فدای سرت هواپیما داشتیم وسطو رو موتورش کنده شده افتاده به هر حال امیدواریم که یعنی اه... امیدواریم و که به چشم خودمون بوئینگ و ایرباس نور هم ببینیم دیگه ببینیم چی میشه خدानوشا که چند سالی هست تو کشور سقوط هواپیمای مسافربری خب به اون معنا نداشتیم یعنی یه زمانی بود ماشاءالله هر چند ماه یه دونه هواپیما می‌افتاد تا زیادی آدم جونشونو از دست میدادن و هیچی که هیچ حالا من نمیدونم چه جووری شده مهندسی نمیدونم تعمیر کار هواپمای ما کردن هواپیماهای دوزاری مرام گذاشتن یا هر چیز دیگه ای که حالا یه مدت مداقل این خبره بد شنیدیم الان هم که میگن قرار چندین فرداند هواپمای بزرگ و کوچیک خریده بشه دادگه ایاءالله هواپیماهای فعلی برن موزه و مردم دیگه اشد سوار هواپیما نشن اینه که این پس آوررج هر دست آوردش که فعلا نسیه و رو هوا باشه فعلا اینجدی که خبرها میگن نمیدونم اینجوری قرارها میگن قت هواپیمایش به جایمثل که رسیده. اما مثلا اگه شما الان منتظرید که فردا اپل استور بیاد سر کوچه‌تون نمایندگی بزنه خب دیگه کم زیادیه حالا هر چند که بلوت به حساب کتاب بودن مملکت ام الان لوازم تحریری سر گذرم یهو می‌بینید تابلوش مثلا زده اپل استور بهش می‌گی آقا لوازم تحریر چرا بی اپل استور داره میگه آقا من به سیب گاز زده خیلی علاقه داشتم از بچگی چی بگم ول حالا نه که بخوام کلیشه مرفهین مرفعین بیدرد و پیش بکشم ها ولی یه سری از این دوستانی من دقیقا همین مرفهین بیدردن اون از سورایی که اون روز میخواست بریم وسط میدون هفته کشف هجاب به عنوان درخواست پس و برجامی اینم از سمیرا و اون یکی دوستم که امروز زنگ زده ببینه ناوگان هوایی بعد برجام تغییر کنه و سقوط و اینا کم شه حاضرم باشه یه سفر برم جنوب اسپانیا. که دماغ سمیرا جان تو مشکل دیگه نداشتی در دوران تحریم، اوضاع اقتصادی، وضعیت معاش، چون فضای بسته سیاسی، الان تو تمام قصد همین یه سفر خارج با تیاره صحیح و سالم بود؟ گفت شرمین اینه بعضی از این سلبریتی های فیسبوک فقط قور میزن یا آدم وقتی اتفاق خوبی بر مملکتش میفته هی خیالای بلند پروازانه میکنه نمیشنه فکر کنه ببینه حقوقش بیشتر میشه یا که راستی اگه حقوقا بره بالا این آیفون هم رو عوض میکنم این بار با گارانتیش شوم مستقیم از خود اپل میخرم پس و برجامه دیگه گفتم باشه، فقط حواست باشه، هستن آدمایی که به خاک سیاه نشستن تو دوران تحریم و الان آرزوشون نه هواپیمای نوعه، نه محصولات اپل، نه از این اینجور چیزا آرزوشون فقط داشتن یه سقف بالا سر خودشون و و یه لقم نون برا رفع گرسنگی امشبم تموم شدیم. من و تو گاهی چنان توی روزمرگی و مشغله هامون غرق میشیم که فراموش میکنیم هیچی همیشگی و موندگار نیست. کمی اون آدمایی که امروزمون روشن و زیبا کردن برای همیشه موندگار نیستن که گاهی حتی در اوج، همه اوج همه این روزمرگی ها و درگیری ها شاید باید مکس کرد، برگشت و آن رو دریافت. که گاهی زندگی دیگه فرصتی برای بازگشت به ما، نمیگه که اونجوری شاید دیگه فرصتی پیش نیاد که بتونیم به کسی بگیم رفتی مرا تنها به دست قم رها کردی به دست کردی به جان من خطا کردی مرا دیگر نخواهی دیگر نخواهی ز سینه‌ی من رنگ تمنا ندارد. دو صخره شن سپیدی، بی تا دلم شور یا میدی، دیگر به دنیا.